پانزده روز گذشت وسطت ها، حرفها، پادر میانی ها هیچ کدام راه به جایی نبرد. تا اینکه آقا جون برای اولین و آخرین بار تنها با من صحبت کرد. بابا، من تا حالا به هیچ کدام شما از گل نگفتم. هر کاری کردم تا شماها ستام و سختی کشم. شاید باید این حرف رو زودتر وقتی قرار بود عقد بشی میگفتم ولی حالا دیر نشده. بابا جون خودت میدونی چه حالا چه هر وقت دیگه تا وقتی که زنده ام جایی هر سه شما روی چشمای منه. ولی بابا زندگی شوخی بردار نیست. این دیگه چیزی نیست که با صبر و تحمل یا محبت و تلاش من رفع و جو بشه. همه تلاش من و مادر مادرتو امروز برای سرف شما بوده که سربلندیتون سربلندی منه. فقط میخوام بگم بابا چون فکر کن. درست فکر کن و خیلی فکر کن. بعضی چیزا از دست دادنشون اینه به دست و و زندگی دوباره است. و از دست دادن بعضی چیزام درست برعکس. بشین خوب فکر کن اینجوری چی از دست میدی؟ چی به دست میاری؟ با ترازوی عقل بسنج، کافی هر کدوم سنگین تر اون وقت تصمیم بگیر. آقا جون، جلوی دهن مردم رو نمیشه بس تو از بخت بعد این دروازهای باز خیلی رو سرنوشته آدم و تأثیر دارن. وای که از رنجان صورت مهربان، چه خاری به قلبم فرو میرفت. کاش میشد داد بزنم، آخه آقا جون با کدوم عقل فکر کنم و تصمیم بگیرم. منو و عقل و سنجش کاش می توانستم بگویم کار از جای دیگه خرابه؟ ولی نمیشد. و من فقط توی بنبستی که گیر افتاده بودم اشک را داشتم که به فریادم برسد. خدا میداند از دیدن رنج پدر و مادرم چه حالی می شدم. خدایا این چه محبتی است که در قلب پدر و مادرها قرار می دهی که چنین گذشت و صبوری به دنبال دارد. میدانستم که هر دو رنج میبرند و عذاب میکشند. میفهمیدم که جگرشان خون است، ولی حاضر نبودند مرا عذاب بدهند و به نظر خودشان به کاری وادار کنند که خلاف میل و خواستم بود. قافل از اینکه این همه مهر و ملاحظه همیشه باعث خوشبختی نیست و کاهی برای خوشبختی سخت‌گیری هم لازم است. وقتی به آقا نگاه می کردم. دلم میخواست آن چشم مهربان و آن دستهای خسته و موهای سفید را قرق بوسه کنم. دلم میخواست به پایش بیفتم. معذرت بخواهم از او به خاطر همه آنچه به من داده بود تشکر کنم و واقعیت را بگویم. دلم میخواست بداند که مثل خودش و شاید خیلی بدتر در جهنمی سوزان دست و پا میزنم و بگویم که نمی آتش و این عذاب که با دست خودم به چان خریدم دامن آنها را هم میگیرد. در این گیردار روزها سریع میگذشت. مریم مدام در رفت آمد بود و زری تقریبا دو سه روز یک بار زنگ میزد. ولی با هیچ کدام حرفی برای گفتن نداشتم. بالاخره قصه و رنج و گریه بقص مدامی که مثل قدی بزرگ راه گلویم را بسته بود و سوزش لعنتی معده و بیخابی مرا از پا انداخت. توی بنبسته بسته عذاب و تردید و پشیمانی خرد و له می و از بین می رفتم و دم نمی زدم. به این ترتیب مریزیم با شدتی بیشتر از گذشته برگشت. ناراحتی مده هم همراه کابوس هایی که خواب را از چشم هایم جسم رنجورم را داقان می میکرد و بالاخره کارم به بیمارستان کشید. با خودم سر لج افتاده بودم. دوست داشتم رنج بکشم و بیمار و نذار شوم. از تحلیل رفتن خودم لذت می بردم انگار به خودم کفاره پس میدادم. کر خوبی حس بودم و هیچ کمکی به خودم برای بهتر شدن نمی کردم آن روزها فقط خدا میداند ته دلم چقدر امیدوار بودم که خبر مریضیم به گوش محمد برسد دلش بهرحم بیاید و برگردد ولی برخلاف انتظارم نه تنها برنگشت دیگران هم به خامت حالم را پای سختگیری و اسرار خودشان گذاشتند و آنها هم دیگر حرفی نزدند و ساکت شدند دیگر کسی پا درمیانی نکرد و در کمال ناباوری شنیدم که محمد علارغم مخالفت خانواده‌اش از ایران رفته. دو ماه بعد، صیغه طلاق رسماً خوانده شد. دیگر باقی‌مانده امیدهای من هم به باد رفت و از مصیبت را باور کردم. چقدر راجاقا اصرار کرد تا آنچه طبق قانون به من تعلق میگرفت یعنی نصف مهرم را بدهد. ولی آقا چون قبول نکرد و گفت من روز اولم گفتم مهره بچه من خوشبختیشه. هر دو پدر اشت به چشم آوردند و یکی شرمنده و دیگری دل شکسته از هم جدا شدند سرموشت من به همین راحتی عوض شد و زندگیم در مسیر دیگر افتاد، و چنین بود که به سه حقیقت مهم پی بردم دانستم دردی را که نشود به دیگران گفت و با دیگران قسمت کرد چه درد سنگین و غیرقابل تحملی می شود خوری که این درد به چار من انداخته بود بیچاره ام میکرد و من چاره ای نداشتم این را هم فهمیدم که آنهایی که مثل من ازدواج را پایان کار و عقد را زنجیر محکمی برای استحکام زندگیشان می دانند. راهی بس اشتباه را تیمی کنند. محبتی که با تعهد و قل و زنجیر به چهار میخ کشیده شود عشق نیست اجباری است که تحملش آزار دهنده و نفسگیر می شود مقصود خداوند از عقد و ازدواج به اثارت در دیگری نیست برای محبت حریمی آسمانی قائل شدن است نه اجباری برای تحمل بعد از آن برایم مسلم شد که برخلاف تصور همگان برای از بین رفتن یک زندگی، یک عشق یا یک رابطه عمیق لازم نیست دلیلی محکم و خیلی بزرگ و اساسی وجود داشته باشد. بهانه های پوچ و جزئی و کوچک وقتی با عدم درایت و درک دست به دست هم می دهند و مرتبا تکرار می شوند برای ویران کردن یک زندگی و یک عشق. کافی که هیچ زیاد هم هست این بحانه های پوچ بود که سررشده زندگی ما را آنقدر به هم گره زد که باز کردنش دیگر برای خودمان غیر ممکن شد چون تنش مداومی که این گره های متعدد و به ظاهر گوچک ایجاد میکنند، به همان اندازه اختلافات بزرگ خورد کنند و از بین برنده است اشتباه محض من هم ساده گرفتن این تکرار بود چون فراموش کرده بودم آتش بزرگی که خرمنی را میسوزاند همیشه از جرقه های کوچک شروع می شود، همونطور که در مورد ما شد. نرمش و صبوری بیش از حد محمد، جوانی و بی ما، نادانی من و سکوت اشتباه بزرگترها که به غلط ما را بزرگ و عاقل دانستند و به حال خودمان رها کردند، ما را بیچاره کرد. ولی افسوس که این واقعیتها را به چه قیمت سنگینی فهمیدم هنوز هم یاد آن روزها پشتم را میلرساند. روزهایی که عشق به محمد حسرت داشتنش قصه از دست دادنش رنج جدایی و قربی و بی کسی عجیبی که بدون او حس می کردم و قریب بودن در بین نزدیکترین کسانم توی خانه خودم داقانم داقی که بر قلب و قرورم خورده بود روحم را بدجوری شکسته و حقیر کرده بود. از وجودم و خودم بدم می انگار این کار پیش خودم زار و بیمقدار شده بودم. احساس تلخ ذلیل و بیارزش بودن مرا را همانطور که روزی از احساس عشق محمد نسبت به خودم احساس سرف رازی و سربلندی می کردم، حالا از این حس که او بود که مرا نخواست شکست و خورد بودم. هیچ دردی به عظمت شکستن قرور آدم آن هم از دست عزیزی که همه کس آدم است نیست. چنبره ماری که مدام قلبم را نیش میزد و این زهر را به جانم می ریخت بیچار کننده بود و من راه به جایی نداشتم. بیشترین مایی زچرم این بود که من بیزار نشده بودم. حتی زره ای از محبتم نسبت به محمد کم نشده بود و نمی توانستم حتی کینه ای از او به دل بگیرم تا بلکه راحت تر فراموش کنم. به این ترتیب تازه می فهمیدم چقدر دوستش داشتم. خدایا چه سچری کشیدم. خاطره نگاه هایش، محبت هایش، گرمای آقوشش، حمایت نگاه های مهربانش، دست های قوی و وجود پرقدرتش قدرتش که پشت و پناه خودم می دیوانه ام می کرد. نه روز آرامش داشتم نه شب و تمام این قصه ها چیزی نبود که بشود برای کسی گفت مثل سرطان وجودم را از درون می خورد و از بین می برد و من مثل جنازه بی روح جسمم را با خودم می کشیدم و توی خانه ای که دیگر نه از آرامش که از ساکت و آرام بود، مثل روحی سرگردان این طرف و آن طرف می رفتم. یکی از همان روزها مریم خوشحال با روزنامه آمد خان ایمان تا خبر بدهد که هر دو در کنکور قبول شده ایم. من ورودی بهمن ماه در رشته علوم تربیتی بودم و مریم در رشته روانشناسی قبول شده بود. مثل دیوانه ها جلوی چشم های بود مادر و مریم روزنامه را ریز ریز کردم و دور ریختم. دانشگاه کسی که به خاطرش قرار بود روزی به دانشگاه بروم کسی که برایش مهم بود دیگر نبود دیگر درس و دانشگاه و قبولی برایم معنا نداشت روزها میگذشت و من همانطور که کم کم چشمه اشکم خشک میشد، آدمی دیگر می شدم. آدمی عصبی که دیگر به جای گریه کردن دوست داشت فریاد بزند مجسمهای بیرو که کشیدن جسمش و تحمل آدمها برایش سخت بود از آدمها حوصل سر میرفت و خلع شدید روحی بیچارام میکرد هنوز هم با آنکه سالها گذشته است وقتی یاد آن روزها میافتم همه چیز مثل روزهای برفی، مهالود و گنگ در نظرم مجسم می شود. چقدر طول کشید تا خودم رو جمع جور کردم حرفها و عکسل عمل های همه و همه مثل هیهوی بی‌مفهوم در ذهنم میپیچید آن روزها انگار درست نمیدیدم مثل آدمی که از پشت شیشه ای گرفته یا از ورای مه قلیزی به سختی ببیند نه درست میشنیددم نه میدیدم و نه حس میکردم و نه میفهمیدم. از همه کس و همه چیز بیزار بودم و احساس می دیگران همه از من بیزارند. مثل اینکه همانقدر همان قدر که عشق و محبت آدم را سرفراز و سر بلند و به خودش مطمئن می کند، با از دست رفتنش درست برعکس احساس شرمندگی و عدم اعتماد به نفس بیچارت می کند. خانه گرم و پر از نشات من سود و کر و غمگین شده بود. امیر دیگر خیلی کم توی خانه پیدایش میشد وقتی هم می آمد ساکت بود مادرم بیشتر سر کتاب دعاهایش بود یا توی فکر وقتی با آهی عمیق سرش را رو به آسمان می گرفت و می گفت خدایا رازیم به رضای تو چکرم آتش میگرفت. میفهمیدم می, گرفت. می که از چه در عذاب است و از سر درد رو به درگاه خداوندی می آورد این بود که خودم را محمد را و همه کسانی را که با عصبحی میدانستم نفرین میکردم ولی چه چهاصل؟شک جایی دائمیم با این کار هم تمام نمیشد. اولین پاییز بعد از رفتن محمد چه تلخ و سخت گذشت و پاییز چقدر به نظرم قبلانگیز آمد؟ نمنم باران دیگر قشنگ نبود و ایستادن زیر باران به جای شادی آفریدن فقط عشکهایم را سرازیر میکرد ها دلگیر و خفه بود و من درست مثل برگ درختها زرد بیجان و خشکیده ی باد و قرش رد در نظرم رعبانگیز و زشت بود چون آغوش پرمهری که پناهگاه هم باشد و باعث شود از ترسیدن و ضعفم به جای ناراهتی قرق شوق بشوم دیگر نبود. با چشمانی بی فروغ و قلبی یخ زده از پشت پنجره مردن و سر و زیر شدن برک ها را نگاه میکردم. آن سال همراه قلب خزان زده ام معنای قمنگیزی پاییز را با تمام وجود حس کردم و فهمیدم و شناختم. با گذر روزها وقتی چشمه عشق هایم بیان که از دردهایم به کاهت شد کم کم آن موجود آرام به آدمی پرخاشگر تبدیل شد که با کوچکترین بحانه ای آماده پرخاش و حمله بود پنج ماه از رفتن محمد و سه ماه از جدایی رسمی ما میگذشت که یک کارت از ذری به دستم رسید نامه که سیل اشکم را دوباره روان کرد و داغ دلم را تازه نوشته بود خواهرم مهناز هیچ چیز از دست نرفته نه موج هم همدردی ما نه عشق دوستان تو که شاید در آن تردید داشته باشی و نه خاطرات شیرین ایام صلال کودکی به یاد داشته باش هرگاه که زیر فشار قصه ها سونووانت خم می‌شود این مهر و عشق به سوی تو راه باز می کند و باور کن باور کن که ممکن است در گزرگاه های تاریک زندگی گهگاه نور ستارهی دیدن نشود اما تا ابد دیدن این نور شاید در ای نزدیک میسر شود. تولدت مبارک. دوست همیشه تو، زری، لندن. مثل ایام مدرسه، انشای قشنگ زری مرا تحت تاثیر قرار همراه کارت یک کاغذ هم بود که زری ضمن گلایی از اینکه من حتی حاضر نشده بودم با او صحبت کنم تأکید کرده بود که هنوز دوست من است، نه خواهر محمد و به انتظار جواب می ماند. ولی من هیچ وقت جوابی ندادم. زری در ذهن من تدائی کننده محمد بود و یادآور او که من می خواستم فراموشش کنم. این بود که کارتش را توی اتاقی که مدتها بود پا به آن نگذاشته بودم اتاق خودم و محمد زیر شیشه میز گذاشتم و از آن اتاق فرار کردم. اتاقی که هنوز وسایل و لباسها و یادگارهای محمد و عطر تنش توی آن موج میزد. پنج ماه بود که اتاقم طبقه پایین و کنار اتاق مادرم بود و من هیچ چیز غیر از لباس‌هایم حتی تختم را از آنجا نیاورده بودم و انگار تئی یک قرار ناگفته هیچ کس هم در مورد آن اتاق هیچ چیز نمی گفت و سراغش نمی رفت. محمد حتی دنبال کتابهایش که آنقدر برایش اهمیت داشت هم نفرستاده بود مثل این بود که توی آن اتاق زمان با همان حال و هوای گذاشته متوقف شده بود با وسایل محمد خاطرهایش کتابهایش و لباسهایش و من از بیچارگی و رنج از آن اتاق فراری بودم نبیم و به یاد نیاورم. روزها باز می سری هم می گذشت.